خود بحث خود راجع به احتیاط بحث طولانی شد و آخرش هم شوید ایک که مشبه شد من باز خلاسهش رو عرض بکنم احتیاط به معنای احتیان جمعی محتملات این خود زادن مراد از احتیاط در کلمات از این به معنای احتیان جمعی محتملات دلیلی بر ردخانش نداره بسیار چیزی بی فینسه راجعه باشه که انسان جمعیه محتملات انجام بده این دلیلی برش نداره نه به حکم عقل که دعا کردن لایده فی ای بیعقلن و نه به حکم شرد انشاءالله چون جدازانهی که از تنبیهات دقیقی آدم حسنه و برایت و اشتغال در کلمات شیخ خواهد و از شد که بله بعضی احتمالات حسنه به حکم عقل عملی اتیان منها حسنه این قبوله قبوله اما همه احتمالات حسنی ندار و اما به لحاظ و اهمیت محتمل چرا؟ بعض وقتا واقعا محتمل اهمیت داره در اونجا هم به حکم عملی احتیاط خورسی داره اما نباید جمیعه محتمله اونه ای که دائره در مسئله اهمیت بشن و عقل بتونه واقعا ها رو اون منافعاتش اخت... به دار احساس داره میمونه مسئله احتیاط به حکم اصل عملی اون تابع این نکته ایز اون تابع ابداع نقصه یعنی یک حسابی زده برای مقدار احتمالات طبق حساب احتمالات نقص میتونه ابداع بکنه ولذا از که این معیار اساسی بین شبه محصول و غیر محصول هم همینه وقتی دائره احتمال خیلی زیاد شده و افراس زیاد شد دیگه نقص ابداع نمی کنه اما اگه دائره کم بود نفس ابدال می در صورت انحلال هم نفس اونم رفت به این قسمت احتیاط اول نذاره این خلاصه بحث آجب احتیاط برگردیم دنباله بحث خودمون بحث این بود که آیا من این بحث رو من یک تنقیه نهایی داره بعد ارزم فعلا بیشتر داریم روی کلمات اصحاب صحبت میکنیم پس تا اینجا به قطعه طریقی شد بنای اصحاب ما از زمان شیخ به بعد البته این مطلب در روایات ما هم هست و از خواب در اینجا روایات نیاوردن لیکن چون روایات ما هم هست ولی اشراک کل حالا داله حتی یه سبین لک غیر رو داله او سبون برد بیانه خب همینه دیگه بیانه در امارات یه هم علمه یا علم خدا کن یا بیانه این یا ما امارات مقام از کردین در روایات هم هست فقط نقطه رو که سابقا از کر این قیام آیا به معنای اعتبارشه یا به معنای اینکه که شده اگر شما فرطه نداشتید امارات خود جده برمومه استاد جور معنا کرده. و توضیحاتش بودش باز هم شاید در قدار کلمات آینده بعضی از مطالب گرد این نیست این به من نیست من توضیحاً عرض کردم در عدله امارات هیچ کدوم عدم علم به واقع نقابیده تو اصول هر کلو جهن نزیم حساس سهلم تو عزله امارات توش نخواهیده حتی تعلم و حضرت و استاد آیه فصل و اهل ذکر این کنتم را تعلمون را ذکر فرمونده که جوابش هم گذشت که این اصلا معنونی شاید به امارات باشده را با تحضی تصریح شده که مرد از اهل ذکر ما هستیم اصلا تصریح شده با این تصریح نمیشه احضه به اطلاق آیه اصلاق بلنا به واقعیت می کن تولا تعلمون من خود خود امورات در می گیره باعث قرص نمی شه در در حالا من بخوام توضیح بدن توضیح بعدی ما به هم میکنه اجازه بده من تو اگر امروز رسیدم این روز سرداش از توضیح خودم خودن توضیه ناهیه رو کنم چون ما امارات را تحت نسبی وصول رو می کردیم یه ویژه دقتمون بود که یک بحثه کبری و کلی و سر در هوا ما همیشه بحثا رو تنگی کردی و روشن و معین ما اولا می گیر امارات مزز امارات نیستی اشوابه حقوقی باشه یا شامل شواب موضوعی هم بشه مثلا بیانه جزء اماراتی است که در شواب موضوعی میاد حکم حاکم حکم قاضی در شواب موضوعی میاد در پس ما والا اولا اون مرز بندیه ها روشن بکنیم که مراد ما چه اماراتیه اماراتی در شباز حکمی خوب هم دیگه یکی خبر واحده یکی اجماع رو رعی شیعه یکی حجیت زواهره یکی حجیت فکواه فقیه اینا یه امارات محدودی هست اما قول قاضی و اینها فلسون حکم حاکم به ثبوت حلال این تو موضوعات خارجی این یک یه... ها فرق می اجازه بدین ببینید همون بیانه لفرق بکنید همون بیانه شما میگید بیانه تا وقتی حجره دیگه شما به خلاف ندارید خب این خودش هم به جمالا همینطوره اما این در معیار فردی همینطوره یعنی شما اگر این داشی، این پاکه یک دو نفر آده میگن نجسه و هر بروشتون به خودشون این اما در معیار اجتماعی شما نمیسیم طور باشید. دو نفر پیش حاکم شهادت دادن که این آقا مثلا این مال مال این آقا نیست مال چیست خدا حاکم میدونه که این طور نیست بیان اشتباه کرد این هم سنیا برن همشی آقا دارن که اینجا حاکم به بیان و حکم و, حکم و به علم خود خیلی واضحه بگید شما اگر حاکم حکم کرد که پیش قاضی حکم کرد این اوای که پوشیدید طبق این شواهد مال این شما قطعا دوی حکم حاکم ب معلومه قطعا شما نمی تونید گفتم اینجا نرد می‌کنی و باز گفتم ها به عواظون رو اون طرف با اینو گفتم ها در ببینید در برجه مسابقات داور یک تشخیصی شده بعد اون فیلمی نگاه می‌کنه کارشناسا تصادفا اشتباه کرده ماردو فومرافی نمیبینه این چه سر داره سرش این راهی که آن رفتن یه نکته دیگه یاری که بعد عرض میکنه. نه نیست برخورد الان ببینید ببینید شما مسئله هلال رو نوشتید که اگر حاکم حکم کرد ناسب الا ما علم بالخطا نیستو حاکم گفت چرا اول ماه شما اشتر... یعنی که اشتباه کرده اعتماد بر بیانیه کرده که حجت این حاکم نظر نظر حجت دید. درست شد لكن معاذل بین خود اهل سنت اذه قائلا که خیر حتی اگر انسان خودش چیز ما رو حاکم حکم کرد در اول ماه نیستواد به حکم ما شو عمل ولی خودش بقید نه مردود نیست نه این این نقطه نه اون نقطه چیزی دیگری ماها خیلی از جهات رو فردیه اهل سنت خیلی از جهات رو اجتماعیه این مردود نیست مثلا خود اهل سنت در اول ماه اگر خاکت بروک میکرد با علم بخلاف معتبر نیست اما آخر ماه با علم بخلاف معتبر نیست یعنی آمدن اول ماه رو با آخر ماه خب چه پرم که خیلال اولا دیگه اول آخر بوده. چون در آخر ما بعد نماز ایده نماز ایده یک مظهره اجتماعیه اگر فاکه گفت فرضا ایده من یقین دارم فرضا عیده نیست مظهره یعنی افشانون عیده بود ما نمیگیم البته خودت خطا کردن چون ما نمازگی ایده زمان غیبت حال که اجتماعی بش نمیگیم نمیخوام بگم این که شما میفرمایید این اینطور نیست البته ما در نظرشود از بعض اهل سنت که بینه و حجت را حتی با علم به خلاف مثلا از ابو هنیفه نه هفته قاعده از وزاید فراشه قبول میکنه حتی با علم خلاف این ثابت انظر ما ثابت نیست این اشکال نداره اما ماها متعارفمون این خیال این کلیت داره این نه اینطور نیست مثلا حکم حاکم چون گیره آن من دارم علیه من حکم میکرده قطعا ظلم کرده حکم حاکم نافذ دیگه دقیق کردیم اینی که شما در عدله حکم حاکم پیش نگذید الا هم که الان به خلاف یا تو عدله یک گرفته نجده که حاکم یه طبقی این بیینه این آقا دوزه خود حاکم نیده این مال این آقاست خود حاکم میده غیر از خدا خود حاکم که این شکر رو گفتن بیانه اشتباه بیینه اشتباه که این مال این آقا نید لیکن بیانه عادل قائم هلان اگه چه از اهلشیه چه سنی دیگه اینجا اختلاف نداریم ما نه اینکه خلافن خاصه سنی‌ها ما هم داریم از انما عقیب بینکم بالایمان و بالبیانات ایشون میاد انما نه چیزی در این موضوعی قطعا نمیذاره بیان قتن داره خب همین فقط یک ذهنییتونه عوضونی یه چیزی خرابی داره یه خرابه این دوتا با هم دیگه نمی‌ساژه راست این معلوماتش ما با هم می علایگه اینو که من وردم تذکیه اصول رو خب ایشون هم همینطور پی برده بودت ولی فرض چیزی این کلمات واوا با ارته کازا توغلی نمی‌سازه. علی باره تذکیه مخاطب و تذکیه اصول بخوا رسیدیم و با وقت ساعت به اشاراتش برگردیم کبره اسم. اگه این ایشون اشغال ایشون می‌خوادشون یه حرفی که اصلا با قواعد اوقلایی قرایلی نمی‌سازه. پیدا تکسشنش این حرفا چی گفتن دو یه قواعد عقلایی است این چیزه قائم مقام گفتن اصلا پیش اصل نمیشه و, نیست و در ما اونجا ان خواهیم گفت که با این صحبت ها حل مشکل نمیشه این باید حل اساسی بشه ما اومدیم برای حل اساسی امارات در و حکمیه رو یک جا حساب کردیم امارات در شوباد موضوع چه جای دیگه حساب کردیم دقت کردید اینا هر کدوم حساب خودش رو داره این ان شاءالله الان برطرف الان من نظر نهایی رو در این تا اینجای اما قطع موضوعی قطع موضوعی خب واضحه دقیق زنده صادرید عنوان قطع و علم اخذ شده که اصطلاحا بهش میگن قط موضوع از مجموعه شیخ علامه حر رسائل از کلم رسائل رو شیخ تقریبا بین سنین مثلا 3 تا 4 سال تا 45 ساله نوشته در سن جوانی نوشته نه از شیخ حدسن بالای 50 سالی هم درش در بسیار در مجموعه شیخ علامه حر شوره سرشون اینطور نه اما این رسائل قبل نوشته، این رسائل نستادن چون ظاهر عبارت شیخ در رسائل ایشون چون قطع این موضوعی ای رو دو گرفته، گرسه یکی طریقی یکی صفتی قطع طریقی یعنی گفته تو اگر عم داری این نجسته عم داری این بونه عم من به نفر طریقی یعنی یک صفت خاص نفسانی یه بفر میگه نه تو یقین داری این بول و صفتی یقین پیش من کاشف. صفتی یقین. رو صفتی یقین. یقین. این ظاهر عبارت شیخ. من تو جهان عرض کردم ظاهر عبارات شیخ اینه. که قطع موضوعی گفت‌ها سیاست تاریخی یا صفتی این ظاهره. لكن عرض کردم دو تا از بزرگان که از نجف ظاهرا ارتباطی با هم ندارن مگر این نارسو. راست حواظ و خاطری باشه یکی مردم آیشا احمد آیشا شانسه نیسوانی محقق به اسم وار کمپانی ایشان میگه نه نظر شیفت این نیست ایشو تحت مورد دو سال نمیکنه یکی نظر مراجع بعد از اینکه ما در تقاضاشون حلی بفرمیدند من خیلی اوقات شبهه میکنند که یکی از تغییرات ایشان مثلا جوازشون عکس کرده باشه تغییر دومم دیدن به اسم لغوات و گسول شافت و ایشان دیدن آی بروز جدی مشکل داره؟ حالا دومون این شد دیدم اینجا لیگن دهکن درگیره، ابراز برای زارم اینجا. شما میتونید در روزش تو چه دهکنی میذیسیم پیداشو؟ خلاصه، چه آی بروز جدیان؟ مشکلش نیست که علم موضوعی یکی بیشتر نیست، دوام تغییری، سفرتی نیست. ولی شیخ همین تقسیم نکرده. مرادش شیخ هم چیزی دیگری، ابراز رئاسال جی معنا گمان میکند. و حتی ادعا هم واژه در این معنا، مربوط به بروز یک معنای میتونم میگم واضحه البته انصافا معنا که واضح نیست اگه خودمون باشیم ببینیم به الله که واضح نیست ظاهر ابواتای مرحوم شیخ دو سالش انصافش ما باشیم از کردیم الا غیر از اینکه بعض معاضی مرحوم علایینی دیگه هم دو سال فهمیدن مهمترین بحثی که ما هنوز ذره واسه شیخ داریم کلماتش خالد مباشری ایشان 20 سال شاگرد ایشان بوده مرحوم آیه آشان حسن آشتیانی قدس الله عصر چرا در نجف ایشان تقریر می‌کردن به لسان شیخ آی آشیانی رو تقریرن لسان شیخ این به خاطر ایشان چاپ شده قدی مجری ایشون هم تو گرفته ما بهترین راه برای ما از کلمات شیخ خود ایشانه چون اضافه برای اینکه رسائل به خط خودش هم نوشته نوشته سال‌ها پیشه بوده در لابلای شرح هم میگه افاض فی مجلس درس افاض مجلس درس اگر اگر باشه با افادات شیخ رضوان الله تعالی سعی کردن حل بکنن انصافا این تقسیم این اول مطلب این چیه واقعا دو تا در عبارت شیخی یا یکی ظاهر دو گذشته که حق با نایمیه حال خویی هم دو تا گرفتن استاد ایشون هم دو تا گرفتن ظاهرا هم با اینا ظاهر عباتیه ای نیست حال ظاهر می ظاهره نه اون ظاهر اون معنا احتمال بعد میزه اما ظاهر میزارن اینه که دو تا باشه. این یک مطلب که شرش هم صادق بذاشیم تکرار شد مطلب دیگه این که آیا در حقه موضوعی امارات یا بعضی از اصول قاه مقام قرض میشن یا نه این حقه شده که مطلب شده پس شد در اینجا دو تا باشه, باشه. مجموعه اقوالی که هست اینه یک اینکه اصلا قاه مقامش نمیشه اگه دو تا هم باشه نمیشه یکی هم باشه که همون یکی کفایی خودش در کفایی عقودش اینه قرصات کفایی مثل مرحوم های برودی دیدن مبنانشون همینه ایشون هم همین داخل پیشت که اصلا نمیشه رأی دوم که ظاهر عبارت شیخه و ظاهر مثل استاد استاد هم تصریح میکنن. و اون تصویر قابلش اگر قصد به نحوه تریهی باشه میشه به نحوه صفتی باشه دو میشه یعنی اگر شما اونجایی که علم داری بوله علم رو به این طریقی این اجتناب بکن اگر بیانه هم شد نتیجه بیانه مثل علم دیگه خب اونجا بله اگر گفت صفت علم در باشه خب در بیانه صفت علم نیست بگیم خب قائمه ها میشه میشه اگر صفت رو عقد احسر... کرد چون بیانه که صفت درست نمی که بالاخره زمن انسان نجای خود میشه اما اگر به نحن طریقیت بود میشه به نحن صفتیت میشه. این نحن مغرم لایی رو بیشتر متأخرینم غالبا به همین تفسیریشان قابلن حالا دلیل شورای بزرگ اینه که اصل تفسیر قبول نداره اینکه اصل دو قول بودن قبول. دو قبول صورت دادن قبول نداره این هم قول دوم که مرحوم استاد آیکوئی قاره که میشه من اجمالا دلیل هر هر کدوم قولم اجمالا نقل بکنم تا بگذره وقت میشه اما دلیل قول اول که نمیشه چون انگار که وقتی آمد گفت اگر انگار معلوم الهوییه یا جول اشتنا با آن، درسته این معلوم البولیه نیست، این ممکن است البیگانه بوده بول این معلوم که نمیشه اشتناب ازش واجبه، تقریب ام در این بالای اعراض داریم، من بول دو نفر که بول آب بول کیه، اما اما که معلوم البولیه، یکی تو لسانه دیگر بولیه هر چی تو لسانه دیگر معلوم البولیه چون نیست، معلوم البولی نمیکنه. بول بول اگر میگو بول بده، بول بوده. دو و خوب بود آلگورو جبی حالت این کار رو نکردن این به این حدیث مبارک هم تمثب می کرده. حتی صفحون به هم به تصدیه سبین یه سبین رو در مقابل بینه یا علم یا بینه پس اگر در جایی آمد که باید استبانه باشه بینه قاید مقام استبانه نمیشه این وجه اولا وجه آلگورو هم واضحه چون میگه اگر علم به نحل طریقی باشه خب یعنی بور خب این اینم بور این هم طریقه شاره این هم طریق و اما اگر به نحل صفتیت باشه صفت علم نداره بور هست اما صفت علم نداره خب صفت علم میخواه صفت علم نداره بیل واضح دقیقی شد قول سومی هست این قول سوم در هاشیه ساکتایه بر رسائل ذکر شده بعدم خودش برگشته تو که قایه گفته خودشم قبول نداره خود... بعد از این منشأش بوده علما رو هر ایشان بحث بکنن حالا با اینکه خود ایشون برگشته به قول ایشون لا یخلوا انتکلفه و تاسفه برگشته از نظر لكن حالا دیگه به عنوان احتمال با اینکه صاحبشام قبول نداره این نکته این وجه چیه این دقت بفرمایید ما یه بحثی همیشه داشتیم که ما در بحث اعتبارات گاهی یک اعتبار قانونی یک لوازم واضح قانونی هم به دنبال و خودش داره حالا اسمش رو این تصانخ در مقام اعتبار سنخیت یعنی سنخیتی همینی که مقام اعتبار هم. اسمش رو زنید لوازم مقام اعتبار در اون اسم رو زنید با خودتونش رو تفسیر مطلب اینه که اگر گفت حتی شما صفت علم داشته باش بول باشه و صفت علم نجست باشه و صفت حل ایشون خلاصه هر بشینه وقتی ما از گفت بیان حجت یعنی چی بیان حجت اصلا معنی بیان این چی یعنی این معد دای بیان واقع بیان گفت این نجسته پس نجست این معنی بیان ولی واضحه بیان گفت نجسته اینم نجست خب تا اینجا تریریت خوبه صفتیت شد و میگه شما در قطع استخده چی میگید؟ صفت حل به واقع واقع و صفته هست. بیانه اما چی گفت گفت این معده واقع این نجیسه پس شما معده بیانه این به و رو خود بیانه ثابتی حالا بود چرا چون بیانه بود از اون برم شما به این, عم داری؟ عم داری؟ این علم داریم این علمم جای اون میشینه علم در معده جه علم واقع میشینه حسین شد تصیب شما در قطعه صفتی چی میخواستید؟ واقع و علم به واقع صفت ا یکی واقع نجست باشه صفت علم دو داری یکی واقع یکی صفت علم الان در بگیمی چی داریم؟ یکی معددار یکی علم به معددار وقتی شما این داریم بوله یکی واقع هست یکی صفت شما صفت علم شما این صفت شما از علم شما به واقع خب تعمال بفهمه؟ حالا بیان آمن در بیانه چی داریم؟ تحیل اصولی شو کنیم؟ بیانه گفت نجاسته این معضای شما از بیان نجاسته علم به معضا هم داریم سر پس معضا علم و معضا این آبها این طور دگم اگر دلیل آمد گفت بیانه حجته خب دقت قصه بسیده اصولی این داریم همچنان که معدده ثابت میشه علم و مثل علم واقع میشه یه دلیل واقعی دو تا تنزیل انجام میده یک میگه این معدده شما منزله واقع دو علم و معدده به منزله علم واقع تحلیل روشن شدیه خلاصه تحلیل پس یه خوب دقت بکنی حرف که کفاییه و حرف دیگران چیه خوب امایت نقطه وقت روشن بشه میگن با دو تا تنظیم میشه مشکل نداره با دو تا جل میشه جل اول اگر بیانه گفت این معذب واقع این میشه دو علم تو به معذب منظله علم واقع میشه این نداره پس خوب دقیق کنی بحثشون در امکان نیست امکان داره میگن دو تا دریم میخواد نه یکی یه دریم بگه معذب منظله واقعه دلیل دوم، علم معنده مثل علم واقعه اگر دو تا تنظیر آمند، آمن میشه، عمل اما دلیل یکی باشه توجه کردیم اگر آمد گفت از اشراک کل را دارد حتی سقوم به این بیانه اینجا سقوم به این بیانی چی؟ یعنی مباد بیانه واقعه خیلی خوبسته اگر مباد بیانه واقعه شد این یک دلیل همین مقدار اثبات میکنه این قائم میگه نه این یک دریم دو تاره اثبات میکنه هم معدام منظر واقعه هم علم به معدام مثل علم واقعه فی فنگل شد؟ پس اون نقطه زرافت بحث اینه که شما روی بحث و تو روی لوازم اعتبارات قانونی آیا اگر گفت معدام مثل واقعه علم ما معدام علم واقعه این تو لسانش هست یا نه؟ این سوال اینه بحث اینه ساحب کفایه در اول میگفت بله در حاشیه بررسائه تو این یه عبارت در آقای خوبی نوشته ساحب که بله میگفت لایقون در حاشیه شینتون فرمزه بلا زمانی به اکس اول حاشیه از برسیفایه ساحب کفایه اول در حاشیه گفت میشه به دلیل واحد میشه بس تو کفایه برگرد گفت به دلیل واحد نمیشه دلیل واحد یک تنظیر بیشتر نگاه نمیکنه. کنه ما از دیگه اون دلیل نیمه علم به معده هم مثل علم واقعه اگر صفت علم اخص و دلیل گفت باید هم نجس باشه هم صفت علم بایدید هم صفت علم به نجاست نجاست به زمینه صفت علم به نجاست سالکفایه هستیش اینجا درخاشه اینه اگر گفت بینه حجر یعنی معدهات حجر معدهات واقعه علم به معذار مثل علم واقع بله نه بخواد اخذار نتیجهش با اون چون که در اونجا مقاموشی اینجا ای اگر هم میشه فعل نمکنه این بخواد لعب اگر صفتیت هم اعطب کنه میشه این اون بوا اگر علم رو انتخاب داره داری علم به معدا که داره اون لسانی که میگه معدا واقعه یعنی علم معدا مثل علم دو تا تنظیم انجام می‌ده نه،, نه یاد علم به معدا چه نیازی به نه نه صاد به معادل کی بعین گفته نجدس، این که ما داریم که اما این که این مطابق واقع بشه یا نباشه نه، اما این که گفته نجدس که گفته نجدس نیکه بود، ایل کردنه که نه، حجت داری نه، حجت این میگه وقتی میگو بحجت، علم به حجت نه، نبود حجت مثل حجت میشه، یعنی اگر گفت حجت مقام واقع، دقت کنید. وجج که این واقعین شما رسیدین به نتیجه خب به همین مقدار همس این واقعیره فهم نمیکنه وقتی که واقعن این قطعاً طبیعیه طبیعی ببینید شما اگه بخوید مثلا اشکال داریم که ما هم اشکال کرده. اشکال گیرید چالش بله یه دفعه شون موضوعی ما اصلا نداریم یا نمیشه مثلا یا به قول وجود اصلا نیست صفتی فقط حرفه یا فقط من وقتی هم علم باشه در موضوع صفتی علم می‌خواد نظر به واقع یقین تشو می یقین بشه؟ یعنی چی؟ یعنی چطور؟ این که هر بود یقین باشه به نشاسته نفس وقتی اون اول و دوم علم روش یقین تشو می لحظه اول و دوم فقط به موضوع یقین چیه؟ متعلّق ببین علم این داشوشن برکت اول یا دوم حالا من دارم نماز بخورم اجازه بده دو نفر من گذاشتن به من میگن آ رکت حرکت من این به عمر دین اماره می‌ذارم که یعنی که که این حرکت که بحث نیست ویی نشان می‌گیم من باید این درکه تا اول یا دوم داشته باشم. درست؟ اگر شاره آمد بیانه همه بیانه با بیان حضجه، با بیان همه ماورا می‌گیریم. بیانی که آن پلیم بودند. دیز خد من اشاره کنم که شک دارم. میگه آماده نفر شاهدیم شما درکت این این که شما درک دومی. بس اینه، اینکی که ما شاهدیم که شما دومی. من به کلامی نه که اینه، علم به کلامی مثل این درک دومی. دو هم بجهت. بجهت بجهت بجهت. خب همین تمام در چیه شما مثلا چی میگید شما هم بگین فقط به مؤذن از از علم نمیکنه خب اینش رو دیگه اشکار خودت صاحب قبول نه ببینی <تصفح> میان شهر که خودش این تنهداد خودش هم باز آیین رو شکر کرد خودش هم شما هم هر برگشت که پای میگه اگر بگیه نامد پیش من دو نفر تو تو دوم هست سوال من به گفته اینها میتونم اعتماد بکنم اما صفت علم هم میگه میشه درست کنید شما علم به کلام اینها وقتی آمد گفت کلام اینها هجته پس علم شما هم علم به واقع فرق نمی دو تا تنزیرم انجام میده شما میگید نه یه تنزیر دو باید تا میگه برگیه طریقیت داره دیگه از بگه علم دبون همدرنده علم واقعه شایی موضوع باشه علم، است می فهمم. شما ادعا می زنیم تحریکی ادعا رو بیر کنی این باشون باشه عوام ساز در تحلیل این احلی کیش بفرمایید. این داره میگه وقتی دلیل جهل آمد گفت برین حجه خودت بخدا وقتی گفت برین حجه این دو تا کار میکنه یکی موعدای فین واقع یکی اینکه علم موعدام علم واقع همون صفت علم اشکال حساب که برای اشکال علماش داره بده اینم درسته به دو تا کار نمی کنه یک کار می یه از این واقعه به یک کلمه نمیگه این این مثل این واقعه یه خود اینگر هستم خود صاحب جفایی نهر بزن خودشم برگرد خود صاحب جفایی نکه این باطلی نهر البته ایشون داره لایخ رو نلسکل دو تا اشکال داره زواره. تعصب و هم که مستلزم دور میشه اونم در این که کجاش دوره تو کلمات عصبان تخریبی است چون این بحث خیلی دور از آوازیه و موضوعی بحث نمیشه چون من عرض کردم علم موضوع ابن احسفری اصلا در روایات نداریم چیزی که نداریم شما بحث میکنید اصلا علم موضوعی ابن احسفری نداریم بله معلوم نیست شکره کردیم که تون رو گذر اولی کافیه برد برد برد برد برد برد برد برد نه میدونم اون چون یقین مقدر نه بخشت چون یقین دارید اونجا بس اگر نداشتین شک کردیم بیانه که آن اولی کنم عمل میکنم نمازو هم درست از به حضورتون که نه همچیزی ما ندارید سفتی ندارید در بحث شهادت مرمونه شه مثال در بحث شهادت در بحث حرف اونام همه طریقی هستن سفتی نیست. ببینید این بحثی که الان ما در حقیقت در اینجا داریم میکنیم تریقیش واضح صفتیش هم امکان داره نیم خواهد میگیم نظره اما واقع نیست با قول تو مقام ثبوت امکان داره اما اثبات نیست بنده اتباه دفتان توضیح میدم بعد توی اثبات قانونی بحث ثبوتی اثباتی نیمی کنه چون در اثبات قانونی ثبوت اثبات یکی است یه چیزی نیست. یعنی چی یعنی ثبوت یعنی اینکه ما با احتمال واسه اون که عدم مرزی نداره کرد وقتی میگیم ثبوت یعنی ثبوت قانونی ثبوت داره تابع اسواره اصلا اعتبارات قانونی اعتبارات اعتبارات اینجوریه سنخ اعتبارات شخصی یا قانونی ثبوت اساسیشون یکیه بحث ثبوت رو جدا نکرین که در ایده از ما وجودا جدا اینجا در تدریس موضوعیشون جدا کردم این بحث ثبوتي رو جدا نقد نرسوا حالا راهنماها بولا امکان داره من میخوام بگم امکان نداره من ارزش علمی نداره موضافا که ما یک اشکالی کردیم که اگر هم امکان داشته باشه خیلی وقت محدود باشه خوب دقت این کار به امکانه مثلا در اینجا بحث از ثبوت این یک نکته خیلی مهمیه که خیلی واضح میشه مکنه بحث از ثبوت در اعتبار قانونی اون امکان فلسفی نیست که ازمنو تضادی ازمنو تناقض اصلا از این نیست لای از زن به نورت ازاد واسه نه اینجا دیمیم ثبوت امکان رو دقصد کنیم یعنی وعا اعتمارات قانونی قبول بکنه. ما ثبوت هم بر فرد یعنی معطبولیت نه معقولیت اون تو فرسفه از معقولیت بست میشه محبولیت محبولیت. اما معقولیت واقع کردیم تکی قالبا ناشه از یک مساله بیگه خوب دقصد کنیم و غالبا این طور ممکنه یکی دو مورد غالبا صفات نفسی نفسانی فردی مولد مساله تکلیفی نمیشه چون صفتیت یعنی صفت قصد من من پیدا بشه برای جوانشه. یعنی این صفت برای من پیدا بشه برای شوانشه این حسابه بندرن این حسابه بنده. ما معتقدیم این باید این محبولیت محبولیت و عرفی داشته باشه ببین شراب داره مساله جا محواسدیست پیه ما منافع علیمونات به اسم ما هر کارو منداریم می میکنی؟ یک م... ملاکاتی داره دوران ملاکات مدار صفات نفسی من چون من قصد دارم شما خرط نداریم بگید چون من قصد دارم این ملاک داره شما که ندارید. نداریم این خیلی بلیده. این فقط ممکن است اگر تصویر بشه این کس سو حالات بگم رقابتی انتخاب شخص قطع اش داره میگه نکنه یعنی که بکنه تخت میکنه ما یک اشکال دیگه هست من منو من اینا میگیم واقع نیست یک به برنامه صفتی در حساب روایت وارد نیست واسه میگه شما واقع نیست اگر یکی دو در محل کناب با توفه بررسی بیاد چه اصول داره اینه دو برای از اواز هر کسی ارجو کنم سقوط قانونی خوده قصود اعتباری چرا؟ چون اعتبار ها تابع ملاکات هست تصور قیام ملاکات به خطایث فردی به صفات فردی من قرط دارم شما ندارید چون قرط مناشه این دیگه پیش من حد شما نیست دیگه ملاقات ملاکات رو این قادم هم بر اساس صفات فردی افراد خیلی این تصورش دلیده آن رو برسر اگه امکان باشه تو باشه. یه مثلا در کل اعتباسو عادتا آدتا نیست که استفات فردی به حساب محل ملاکات بشن. ملاکات خواهد استفات فردی ما باشه. بفرام دارم. میدونم این نمیاد میاد ملاک درست بکنه. خوب یه فرد بکنه. یعنی می... نهیم میکنیم امکان داره امکان در اصطلاح ما غیر از امکان فلسفی کردیم؟ امکان در اصطلاح ما غیر از امکان فلسفی بله لا دارن ها تغاز دلم تناقضی لازم نیده مشکل عقلی لازم نمیاده اما اعتبارات قاملی مناسب نیست. چرا؟ چون این اعتبارات دابع ملاقات هست ملاقات هستی در ساختمان روی سر نشستن تو اتاق بودن بیرون بودن هم خود داری ملاق این یک مسئله اون رو اما صفات قرد داشته باشه من قرد این بوله این ملاق رو استفاده اون واقعا نداره بوله برای اون ملاک نداشت یعنی خیلی هم. از ذهن کیفیت داره قرار ضمانت اجرای براش تمام بده اگه صفات شخصی بلا حال تعریفیت نذفتیا نمیشه صفات شناخت شود که شما کسی نمیشه مثل محال میذنه در <تص> من امکان عقلیش روش روشن شد. امکان قانونی به نظر من نداره. امکان قانونی نه امکان عقلی. چه؟ اگر تا باید ایش شهر باید اثبات در من میگم ارتخاط و اقلاعی ما مساعد نیست. خوب دقت کنیم؟ مساعد نیست که سفات نقصانی من میلاق درست کنه. خیلی بعیده انصافا حالا یک مورد استثنان به شون پیدا میشه یک جردی از جاد و اگلال ارتکاز و ما مساعده است بسیار این هم راجعه این اسم از بطره ما بحث فکر موضوعی چون اون صفتی و اصلا بگیم واقعی خیلی بحث نمیخواد بحث خواهد آن طریقی بود حالا به همین جردی که شده در اینجا صحبت های مثبتا زیادی که محموم استادن و محموم ه من فکر میکنم بهترین راش همین باشی احتیاج اون تکمیل دو رو این حرفایی که گفته شده نداریم من یه توضیح از کدم شما دارا شما ایام کسید از کدم بعضی از حالات نفسانی من این توضیح رو من دارم اینا قیل جهد تریجیت یک اضافه هم دارم مثل خوب ببینید مثلا میگه ای این راهی درستی که تخاف الان نفسه اینجا میشه رون حالت نفسی و خوف این امکان ما این توضیح دادمی که خوب مثل خاف الان نفسه میکرسه مریض بشه ببینید ممکنه شاربگه همین که میترسی مریض بشه افتاد بکن خوب دکت بکنید بلا در واقع مریض نباشه مریض نشه نه این ها من چه, من چه. ها من از یادم خوب نیست البته اشکال شما باره من بود حالات شخصی که طریقت صرف داریم یادم رفته اضافه حالات شخصی که طریقت اون دخل... اینه گفتم نواره من دستور اون از قاعده بعض از حالات شخصی انسان که طریقت داره اضافه هم توش داره مثل حرج مثلا اگه بخواد میذ دیگه در ذیق نفسه ممکنه مریض در اما همهش نراحبه که من ممکنی دکتر گفته یک مرز ترسان بگیر که قابل علاج نباشه بایموزهی من بعدم نگره دوزه هم گره مرز هم اما اون حرج بود اون زیده نقص بود اون خوف بود اونجا رو ارز میشه اون حالات نفسی که طریقیت داره لکن اضافه هم داره اونجاها میشه اما اونجایی که طریقی صرف بود هیچ نزده به قیل فقط طریقیته این طریقیته اینه از به بکنه این اشکال من این بود ثابته این اعتبارات عقلایی مساعد نیست اگر در یک جایی این استفاده طریقی مطروغ رو بی رو به قول بزرگ بزرگوار نگا رو هم نگاه میکنه اگه گفت علم به نجاست خود نجاستا نگاه میکنه علم تنها رو نگاه نمیکنه خوب دقت بکنید اما اگه گفت خوف مرض ممکنه مرز نگاه بکنه ممکن خوف تنها رو نگاه بکنه ممکن هر گره نگاه بکنه این توجهاتش بودن و به فیلم فوقهای اختلاف دارن که اگر خوف مرز داشت معذاره به حوزه و مرزم نیامر بخش این تابع همین نقطه است من ارز کردم حالات نفسی که جهاز تریقیت دارن اگر غیر از تریقیتشون یک نقطه نفسی هم داره، این میشه ارز کرد چون ملاقات داره. این ملاقات داره خوف از سفر خوف از مرز حرج حالت تحرج میگه نفس این واقعیت داره این میشه این ملاقات داره چون شریعت صنعت سهل است شما اگر حرج دارید رمزگذاری ازدواج نگیرید این میشه گو هو بالکه من توضیح دادم نه در هم وقتش شما هم کردم هرچقدر دیگر نیست اجتماعی ما مرگوش قبول نزدیم این اجتماعی مرهم نهایی حاکمیت و تحسین که لازم است شخصیه لازم این توازیشون هم تو استاد اشکال کردوزن برایشون لاحرج نوی هم گرفت بود این که لاحرج لا شخصیه سرمش در این برای بگیم برمیگرده که زرر به معنای نقصه عده قاعده لاحرج و لاحرج یکی گرسند حقیقی نیکی این دوست ها ترمون کنند لاحرج قاعده نقصیه مراد از زرر نقصه اگر این کار رو انجام دادیم نقصی تو زندگی شما نیست میزنه زرر موردش نخصه چون موردش نخصه این واقعه علم داره اصل نشده علم طریقیه اما هرج حالت نخصانیه انسان ناراحت زیغه ناراحت ناراحته روزه بگیره در پشاره این سفر میخواد برمیشون این مزد تو سراح هستن یا سرار بیخونه خب واقعا در زیغه ناراحت سرار این فقط نخص نیست لذا مرمونهایی میگه اگر که مثلا یک روزه گرفتن حرجی شد به خاطر حرجی بودن لازم نیست برای این شخص خصوص حرجی باشه اگر برای عام حرجی بود برداشت میشه اما اگر ضرری شد باید شخص شخص نگاه بکنه حواس تحت شد 99 خورده داخل مردم بگیرم اگر روزو بگیرن ضرر اما این یه نفر روزو دیگه خودش نمیخوره میگیره این موقع رو تداوم این مورد از این که لاذره شخصیه یعنی اگر همه زره دیدن تا ندیدی باید انجام دیدی لا در میشه. اما لا نوعیه نوعیهامه مردم تو هررج واقع میشن شریعت از مقدسه این طوره ما جعلعله گفت از بینمت حرج شخص, شخص حساب نمیکنه نه حساب میخواه حالا این مثلا احتیژ دودیجایم. خلاصه بحثاً یه وقت فر تا اینجا رسیدیم که در علم موضوعی مردم شفاال به تفصیل بین سفدی و طرریی آی برجری‌هاشون اصلا معتبرن که این درست نیست، یکی بیشتر نیست، و اصلا ایشون نیست، درست نیست. و که آی برجری‌هاشون اصلا اصلا استاد میخوان بدارن چون هم متأسفانه فراموش کرده باشه. میگن قابل مقام نمیشه، ایده مثل کفایه‌ برجری اینه که با مقام علم موضوعی مطلرا نمیشه. هم میشه در علم در نمیشه. خود کفایان در حاشیه رسائل گفتو در هر دو میشه بعد در برگرد رو در هر دو نمیشه پس مجموعاً سه تا احتمال در مسئله هست و به لحاظ قول عملا 2 تا در علم موضوعی به نحوی که طریقی یا گفتن مطلقاً نمیشه بعضی‌ها گفتن مطلقاً میشه اون که میگن مطلقاً نمیگه میو علم میخواد علم ندارید خلاصه میگه تو حجت داری که این نجسه بیان اینطور اما علم نداری صدق که میگن میشه میگن همش این حجت هست علم به حجت مثل علم واقع اینا میشه. اونام که میگن مطلقا میشه اونایی که تفسیر قائلند میگن ادله حجیت اثبات میکنه این منزله واقع اما علم به منزله اون نه فقط صفتی نمیشه تغییری میشه این سه تا راعی در ان شاء الله فردا عرض صحیح در مسئله همون باو گرجی می‌دونم مطلقا نمیشه صلی الله